خانه باحال حالا چه کار می‌کردم این که برای دزدیدن جسدی از پزشکی قانونی شهر اجیر شوی به خودی خود عجیب هست اما اینکه هایی که تو را اجیر اند افراد دیگری را هم برای دزدیدن همان جسد از پزشکی قانونی اجیر کرده و بعد هم افراد دیگرتری را اجیر کنند تا همان جسدی را که تو از پزشکی قانونی دزدیده‌ای از تو بدزدند اوضاع را از آن هم عجیب‌تر و بقرنج‌تر می‌کند حالا که تصمیم گرفته بودم بروم گورستان و ببینم آیا می توانم آن پانصد دلار باقی مانده مزدم را از آنها بگیرم یا نه؟ چرا باید اوزا از این هم که هست پیچیده تر می شد؟ حرکت بعدی من چه باید باشد؟ هنوز تا معد ملاقاتم با آنها وقت داشتم اما احمقانه بود که همین طوری قرار بروم قطعاً آدم های قابل اعتمادی نبودند تنها برگ برندی که آنها داشتند. همان پانصد دلار احتمالی بود اما من هم چیزی داشتم که آنها به شیوه عجیب خودشان دنبالش بودند. لش آن فاحشه رو صندلی عقب ماشینی بود که دقایقی قبل به زور از آن 4 تا سیاه ناباب گرفته بودم. شاید باید ورقهام را طور دیگری رو می‌کردم. زیادی با بابه میدان‌ها بازی کرده بودم. با خودم فکر کردم باید رقم را بالاتر ببرم. باید بازی تازه‌ای را بیندازم. بیش از آن 500 دلار باید به من می رسید. میدانستم که پاچوبی از اینکه ماشینش را در باداغان کرده حسابی کفری خواهد شد. به نظرم حتما انتظار یک ماشین نوع را داشت. نه با در نظر گرفتن نحوه پیشرفت اواع به بیش از آن 500 دلار احتیاج داشتم اگر جسد را میخواهند و این در حالی بود که به نظر میرسید تمایل زیادی به تصاحب آن دارند باید پول کنانی با بسلفند. سرکی به خانه زدم. جسد را رو از روی صندلی پشتی برداشتم و روی کولم انداختم و بردم توی خانه. وانمود میکردم که کیسه یه رخ چرک است. وانمود هم نمیکردم فرقی نداشت. چون هیچ کس آنجا نبود که مرا ببیند. خدا رو شکر که خانم صاحب خانه همان روز ریق رحمت را سر کشیده بود. <تصفيق> شاید روی هم رفته خیلی هم بد اقبال نبودم. شاید از این ماجرا پولی بیشتر از آنچه انتظار داشتم گیرم میامد. نعش به دوش از کنار پلکان آپارتمان صاحب خانه مرده می که لبخندی به لبم آمد. فکر کردم نش خودش را همین چند ساعت پیش از اینجا بردند پایین و حالا من دارم نعش دیگری به خانه او میآورم. واقعاً واقعا که خانه باحالی بود. می توانست بخش کوچک اما مناسبی برای الهاق به پزشکی قانونی باشد. مثل نامه ها در اداره پست جسد ها هم اینجا می آیند و میروند. سالون گذاشتم و لش فاحشه را به آپارتمان خودم بردم. لشش را کف آشپزخانه کنار یخچال گذاشتم و بعد در یخچال را باز کردم و همه آن غذاهای کپک زده و آشغال‌های از ریخت افتاده را از روی قفسه‌ها برداشتم و ریختم بیرون. بعد قفسه‌ها را هم درآوردم. چرا که نه جایی بیعیب و نقصی برای نگهداری او بود و آخرین جایی که کسی ممکن بود به آن سرک بکشد. لاشه 500 دلاری برکشته بودم توی ماشین و داشتم به جنوب سانفرانسیسکو سمت گورستان و آسایش الهی میرفتم تا سر قرارم با گردن و بانوی آب جو خورش حاضر شوم ملاقات جالبی میشد. اما نه به آن شکلی که آنها برنامه ریزی کرده بودند حالا باید با قواعد من بازی می کردیم و احساسم این بود که نعشی که تو یخچال داشتم خیلی بیشتر از 500 دلار می‌ارزید احساسم این بود که حالا صاحب یک جنازه ده هزار دلاریم. من آن را دزدیده بودم و مال من بود و میخواستم به قیمت واقعیش بفروشم و سرجم ده هزار دلار به نظرم کاملاً عادلانه بود. چرا که باجه تلفنی جلوتر کنار جاده به چشمم خورد؟ یادم آمد هنوز هم به مادرم تلفن نکردم. باید قال قذیه را میکردم بهتر بود قبل از اینکه دنبال کار جدی را بگیرم خیالم را از این بابت راحت کنم نمی‌خواستم در حالی که آماده می‌شدم تا بزرگترین نقشه عمرم را پیاده کنم و بعد از آن دیگر برای همیشه ساکن خیابان رفاه شوم، این قضیه ذهنم را مشغول کند. زدم کنار و پیاده شدم. یک پنج سنتی انداختم و شماره گرفتم. ده دوازده باری زنگ خورد. لعنتی! نشد صدای او را بشنوم که بگوید: "الو؟" و بعد من بگویم: "سلام مامان، منم." و بعد او بگوید: "الو؟ با کی دارم حرف می‌زنم؟ الو؟" و بعد من ناله کنم که مامان و بعد او بگوید این نمیتونه صدای پسر من باشه. الو؟ و بعد باز من همانطور ناله کنم که مامان و بعد او بگوید صدا شبیه صدای پسر منه، اما اگه هنوز کارگاه خصوصی باشه که جرئت نداره به من زنگ بزنه. البته خانه نبود و من از این همه جان سالم در برده بودم. یعنی کجا رفته بود؟ امروز جمعه بود و رفته بود قبرستان سر قبر پدرم که وقتی چهار ساله بودم کشته بودمش. اما می که حالا دیگر حتما از قبرستان برگشته یعنی کجا رفته بود؟ برگشتم توی ماشین و راهم را به سمت گورستان پی گرفتم فقط ده دقیقه دیگر راه مانده بود آن وقت آوزا قمر در اغرب می شد حدث می که گردم و رئیس پولدارش از تغییر تازهی که من در برنامه داده بودم و از قیمت جدید جسد خوششان نمی آمد. بله آنها به طرز ناخوشایندی جا می خورند. و به نظر من که از هر کس دیگری برای این رو دست خوردن بهتر بودند. خیلی خوشحال بودم که هنوز 5 تا دیگر دارم. همینها کافی بود تا گردن را انگشکوچیکه کند. بعد یاد یک چیزی افتادم. دست کردم توی جیبم و تپانچه خالی را درآوردم و روی صندلی کنارم گذاشتم. نباید دوباره همان اشتباه را مرتکب میشدم. خجالت داشت. اگر کنترل اوزار را دوباره به دست نمی‌گرفتم همانطور که با شلیک کردن به پای لبخند به دست گرفته بودم، اقدامم هم ممکن بود نتیجه عکس داشته باشد. تا اینجا که شانس آورده بودم. لعنتی. ممکن بود الان لبخند همینجا این نشسته باشد که من نشسته ام، پشت فرمان ماشین خودش، با آن ستاره رفیقش مشغول شوخی و خنده باشند و جسد زنی که هم توی صندوق عقبشان باشد و من هم ممکن بود به عنوان بخشی از یک برنامه آشپزی ناتمام، دراز به دراز کف خیابان افتاده باشم. همه چیزی که برای کامل کردن هم لازم بود یک سیب زمینی، پیاز و هویج و یک برگ بو بود از فکر آبگوش شدن اصلا خوشم نمیان شب همیشه تاریک است. شب واقعا تاریکی بود و داشتم به سمت گورستان آسایش الهی میراندم انقدر تاریک بود که به فکر سریالم اسمیت اسمیت در جدال با سایه های روبوتی افتادم وقتی پروفسور عبدالفورسایت برورهای جیوه را به چنگ می آورد و میتوانست کپ کپ قربانیان سایه شده بدبختش را فعال کرده و آنها را به سراسر دنیا گسیل کند حاصل کارش همچون شبی میشد. شب مصنوعی پروفوسور عبدالفورسایت شبیه همین شبی بود که من داشتم از دل آن به سمت گورستان میراندم. بعد فکر دیگری به ذهنم خطور کرد که مرا از بابل به خدا آورد شاید شبی که در دل آن راهی قبرستانی همیشه تاریک باشد. این چیزی بود که باید به آن فکر می کردم. اما فکر کردنم خیلی طول نکشید چون ذهنم بیدرنگ به بابل برگشت. بیب منشی زیبایی ابدیم نه نادیرت پاشته بود گفتم سلام عروسک وزیه چیه؟ با صدای بیتابش گفت با تو کار دارن عشق من کیه؟ دکتر فرانسیس همون انسان دوست معروف چی میخواد؟ به من نگفت میگه فقط میتونه با تو درمیون بذاره گفتم باش عروسک وصلش کن دکتر فرانسیس گفت سلام آقای اسمید اسمید من دکتر فرانسیسم گفتم با شما آشنایی دارم از من چی وقت لاست دکتر گفت ببخشید گفتم من خیلی گرفتارم روک و پوز کنده بگین من نمیتونم وقتم را هدر بدم من میخوام شما را استخدام کنم گفتم خب این چیزیه که منتظر شنیدنش بودم نرخ من یک پوند تلا برای هر روزه. سوای هزینه های جاری. دکتر فرانسیس گفت با شهرتی که شما به عنوان یک مأمور مخفی خصوصی دارین این رقم معقول به نظر میرسه. اشفهی آمدم و گفتم شما وصف منو شنیدین؟ گفت همه بابل وصف شما رو شنیدن. البته خودم این رو فقط دلم میخواست از زبان او هم بشنوم مشکل خود خوش خوشانی داشتم. گفتم، حالا چه کاری از دست من برمیاد؟ از سو صدایی نیامد. دکتر فرانسیس، من میتونم راحت پشت تلفن صحبت کنم؟ منظورم اینه که هیچ کس صدای بارو نمیشنوه؟ گفتم نگران نباشین. اگه یه نفر تو بابل باشه که رو کنترل کنه، اون یه نفر معمولا منم. بگین ببینم مشکلتون چیه. به مخیل هم خطور نمی‌کرد که پروفسور عبدالفورسایت شیطان صفت، در مکالمه ای ما را شنود می‌کند. شوخی کنترل تلفن را یک خورده زیادی چربش کرده بودم و این بعدا مرا به دردسر بزرگی میانداخت. دکتر فرانسیس گفت: بسیار خوب آقای اسمیت اسمیت گفتم اسمیت صدام کنین مثل همه اسمیت. من دلایلی دارم که فکر کنم یه نفر داره تلاش میکنه آخرین اختراع منو بدسته و در جهت مقاصد شیطانی به کار ببره. گفتم اختراع شما چی هست؟ دکتر فرانسیس گفت. من بلورهای جیوه را اختراع کردم گفتم همین حالا خدا می رسونم میترسیدم آخرین اتفاق بیفتد. یک نفر دست به کار شود و بلورهای جیوه را اختراع کند و راست بگویم فکر می کردم که دنیا هنوز آماده پذیرش این اختراع نیست از هرچه بگذریم سال 596 پیش از میلاد بود و دنیا هنوز از خیلی جهات جای پیش رفت داشت باب اصل لوئیزیانای لبخندی زدم روی ترمز بابل تقریبا باعث شده بود گورستان را رد کنم کشیدم کنار ماشین را نگه داشتم و چراغ‌ها را خاموش کردم هیچ ماشین دیگری آن دور بر نبود اگر قرار به ملاقات بود من اول رسیده بودم حتی نمیدانستم آیا گردن و صاحب آبجوخورش خودشان را افتابی می‌کنند یا نه اما به دلم افتاده بود که آفتابی میشوند به همین دلیل بود که من آنجا بودم. حالا فقط منتظر میماندم ببینم چه اتفاقی میافتند. شانس ده هزار دلاری که هر روز به آدم رو نمی کند. یک یه چیزی کنجکافم کرد دست کردم توی جیبم و کبریتتی درآوردم. کبریت کشیدم و اسم مالک را روی فرمان خواندم. کباب اصل لویزیانای لبخندی دوزاریم افتاد یک روزی باید میرفتم سراغ لبخندی و کبابش را امتحان میکردم. واقعا ارزشش را داشت ببینم وقتی از در وارد شوم چطوری نگاه می کند. کبریت را فوت کردم و در تاریکی مدتی منتظر ماندم. بنا کردن به فکر کردن درباره بابل البته خیلی مواظ بودم تحت تأثیر تاریکی هوا قرار نگیرم و بنابراین می توانستم یقه رویای بابل را بگیرم و از ذهنم بیاندازمش بیرون. هوای به این تاریکی بازگشتم به بابل را خیلی آسان تر می کرد. به تاریکی که فکر می کردم، به فکر سایه های روبوتی می و اصلا نباید این کار را می کردم. نمی خواستم بابل مرا دوباره توی مخمزه بیندازد. خوش شانس بودم که گورستان جلوی چشمم بود وگرنه ممکن بود تا نیمه راه لسانجلس رفته و به فصل هفتم اسمی در جدال با سایه های روبوتی رسیده باشم. آن وقتی گ شانس ملاقات با مشتری و گرفتن ده هزار دلار را برای همیشه از دست میدادم. همین چیزی که سرخر گیرم می آمد لش یک فاحشه تو یخچالم بود. و این چیزی نیست که بشود آن را پایان موفقیت آمیز یک پرونده خواند.